الله سوره الجن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحی انه من الجن فقالوا الله که بخشاینده و با رحمت است بگو به من وحی شده که گروهی از جنیان قرآن را شنیدند و اعتراف کردند ما قرآن شگفتی را شنیده که به راه رشد و تکامل هدایت می کند ما با آن ایمان آوردیم و اهدی را شریک پروردگارمان ما نمی دانیم و اینکه بلند مرتبه است مقام پروردگار ما نه همسری دارد و نه فرزندی اختیار کرده است صفیحان ما در مورد خدا؟ سخنان و ناربا می گفتند حالان که می پنداشتیم آدمیان و جنیان هرگز در مورد خدا دروغ نمیگویند در حالی که مردانی از جنس انسان به مردانی از جنس جن پناه می بردند و آنها سبب افزایش گمراهیشان می شدند آنها همان گونه گمان می کردند که شما گمان می کردید اینکه خداوند احدی را زنده بر نمی انگیزند. حالا که ما همه آسمان را جستجو کردیم و آنجا را پر از نگهبانان نیرومند و شهابهایی چون تیر یافتیم ما در جاهایی که شنیدن اسرار عالم بالا ممکن بود می‌نشستیم، اما اکنون هر که بخواهد گوش دهد، گوشدهد شهابی چون تیر را در کمین خود می و ما نفهمیدیم آیا برای اهل زمین شری اراده شده است یا اینکه پروردگارشان اراده کرده به راه رشد هدایتشان کند؟ در میان ما هم افراد صالح هست و هم افراد غیر صالح. ما گروه های مختلفی هستیم. ما یقین داریم که نمیتوانیم توانیم خداوند را در زمین عاجز کنیم و از دست او بگریزیم. ماهنگامی که سخنان هدایت‌آمیز را شنیدیم، به آن ایمان آوردیم. پس هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد، نه از نقصان پاداشش میترسد و نه از ذلت. برخی از ما تسلیم خداییم و برخی ظالم. پس هر کس تسلیم خدا شود، بدون شک خود را در راه رشد آزاد کرده است. اما ظالمان هیزم جهنم خواهند بود. و اگر در راه ایمان صبر و استقامت بورزند ما آنها را با آب فراوانی سیراق می تا آنها را امتحان کنیم. پس هر کس از یاد پروردگارش روی بگرداند، او را به عذاب سختی گرفتار می سازد. بدانید که مساجد از آن خداست، همراه با خدا کس دیگری را مخوانید چون بنده خدا پیانبر به عبادت برمیخواست و او را میخواند گروهی پیرامون او به شدت ازدهام میکردند قل ولا, به قل لا لكم ولا رشدا. بگو من فقط پروردگارم را می‌خوانم و اهدی را شریکش نمی‌سازم بگو من مالک زیان یا هدایتی برای شما نیستم بگو اگر نافرمانی کنم هیچ کس مرا در برابر مجازات خداوند پناه نمیدهد و پناهگاهی جز او نمی‌یابم تنها وظیفه من ابلاغ پیام الهی است و رساندن رسالات اوست پس هرکس نافرمانی خدا و پیام برش نماید آتش جهنم از آن اوز و جاودانه در آنجا خواهد ما مخالفت کفار ادامه می تا تا را به آنها بعد داده شده است ببینند. در آن هنگام خواهند فهمید که چه کسی بیاورش ضعیفتر و نیروهایش کمتر است بگو من نمیدانم آیا آنچه به شما وعده داده شده است نزدیک است یا پروردگارم فرصتی را برای آن مقرر داشته است؟ دانهای غیب اوست و هیچ کس را از اسرار غیبش مطلع نمی کند. مگر از پیامبرانی که آنها را برگزیده است و او مراقبانی از جلو و پشت سر آنها گمارده است تا مشخص کند پیامبران رسالت پروردگارشان را رساندهاند هرچند او به آنچه نزدان هاست آگاهانه احاطه دارد و هر چیزی را دقیقا شمارش کرده است لیعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لدیهم واقصی كل شیء عددا خداوند بلند مرتبه بود بل. از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و, علیه و